افسوس و توی دل ساده که هر کسی وسط عقده ای فرستاده هر که اومد جلوت گفت دل سوز توه حالا میبینی با اسپم امروز توه تو میخواستی زیر پرچم هیچ کس نری به هر سیاست پستی تو نشخند زدی نگاه ها و صدای تو شدن بیشتر شدید ولی جوری که هستی تو رو هیچ کس ندی تیخو بکش فکر نکنم خونت رگ بیاد وقتی حتی مادرتم ازد مدرک میخواد، دیگه خوشی ها رو تو زندگی تصور کن فقط یاد میدن که به خدا توکل کن مردم میخوان باری کرود دارن و تو رو تب می خب حقم دارم تو یه جوون احمقی و عشق رفت داری به بالا سریعتم خیلی رشد کم داری تو زندگی عادی رو نداشتی ثانیت شب بوده روز نداشتی ولی توی هانرت مون بازم دوومه تو مملکتی که نمایش سازم حرومه آره کسی باست تو قدمی ور نمیداره ولی کسی توی مشکلات کم نمیذاره باید جای اینکه داده اون که هستی تو کنی بشینی و دونه های تسبیتو بشنی افسوس اف... باست توی دل ساده <تصفح> که حتی تک خنده هاتم گله داره افسوس،, افسوس واسه توی دل ساده که چشمای تو هر لحظه گریه داره افسوس،, افسوس واسه توی دل ساده که هر کسی واسه توب ای افسوس. افسوس واسه توی دل ساده که تو هفته آسمون نداری یه ستاره افسوس درست توی دل ساده که حتی تک تک خنده هاتم گله داره من خوب میفهمم از غم ظاهرت که حتی شک به مریم با کره داری پیش خودت میگی که این بیراه نمیگه حتی تصویر زندگیتم سیاه سفیده تو میخواستی که عمرتو هرز پس ندی ولی فقط برقای تقویم و خط زدی وقتی دیگه بیداش شدی تو خواب سخته حتی گریه هم یادت رفته مثل هفتان احمق دیگه حتی شعاروی قشنگتم خامد کرده تو هم یه جوونی پیرتر از نن بابا <تصفح> که پر عقده شده دیگه از سر تو این پنج تو انگشت واسه مشتگره کن حتی نمیتونی راحت باشی پشت تلفن <تصفح> که شهرم تو ظلمت ای از افسانت پیغم پیغمبره چیه غیر قابل حسم حرفام یه چندمنت ذری حقیقت تو توی اخبار بهگری جوونایی که جاگ تیغ رو دستش و اونایی که لبخندی نیست تو حرفشون این دل من بود فهمیدی حرفش و بیخی یادونه های تصبیر چندشه افسوس, افسوس اف、واسه تای دل ساده که حتی تک تک خنده هاتم گله داره افسوس, افسوس اف... ا... واسه تای دل ساده که چشمای تو لحظه ایگریه داره افسوس افخواص دل ساده. که هر کسی واسه تغده ای افسوس, افسوس. آزه توی ساده که تو هفته آسمون نداری یه ستاره افسوس, افسوس.